بسم الله الرحمن الرحیم و لله رب العالمین الله على سیدنا رسول الله و آله قیبین و المعصومین و لحظ اللهم خبر بود که از کردیم آیون اشکال معروفی رو اینجا مسح کردن که اصل اشکار به این صورت بوده اینما سارو رو و روشن شد که در از این آیات مبارکه ناهی از زن یا لاعن رو تعبد بگیریم یا این آیات رو ارشاد به حکم عقل بگیریم به نظر ما این آیات مبارکه ارشاد به حکم عقله و اصولا به جوری به اصطلاح به کار برده شده که آوی از تخصیصه اینا لایق نمی من حق شیئا این یه تعبیری نیست که تخصیص برداره بگیم فلان مورد تخصیص خورده و لذا اینکه بگیم مثلا حجیت خبر ثقه یا حجیت ظواهر یا حجیت قول اهل خبره یا حجیت اول وکیل فیپا یخ را منع کرده بگیم اینها به تخصیص خارج شدند این نیست از کدام مغز دایره‌ای هم تعبیر شبیه این دارند ولی تحلیل روشنی رو ارقامو ندارند اون تحلیل روشن به نظر ما اینه یک این آیات مبارکه ارشادی هستند ناظر به حکم عقلا دو این آیات مبارکه اختصاصی به احکام و اعتبارات قانونی و تحصیل مؤمن و امور معاش و معاد به این تفکیک نیستند بلکه جریان دارند در همه موارد و از حقاً در هر موقع به حسب خودشه در اعتبارات قانونی حق یک شکل است در مسائل فیزیک شیمی طبیعیات نجوم و مشابه ذلک به شکل دیگری و هدف آیه مبارکی این است که انسان در زندگی خودش چه زندگی عقل عملی چه عقل نظری سعی کنه که اعتماد نکنه علام مالا یا اعتماد را مراد از کلمه زن یا مراد مالایی سبه که بگه علم مراد از لاعلم این درجات احتمال نیست مراد اون پشتیوانی پشتیوانه و به اصطلاح مستند علم انسانه مراد این آیات مبارکه یعنی شما در علم خودتون در تصرفاتی که میکنیم بر اصول یا الگ باید اون مدرک اون مستند کاملا دقیق و روشن و واضح باشه نمیشه رو امور اختیاری اعتماد کرد خبتا در هر علمی در هر فنی در هر زمینه یه مستند خاص مدره یه پشتوانه علمی خاص مدره و نظام مثلا وقتی میشیم آین نظر نه لایهونی می نره حق این تخصیص خورده به قول تبیب یا به قول مرحوم استاد تخصیص خورده به زواهر نه قول تبیب در عالم خودش طریق اصول الی حق اتباع قول تبیب اتباع مالاعل نیست اتباع ما فی علم لا تخم مال از لغوی ولذا در عقیقت تو این مسئله اونی که از همه مهمتره وضوح قیام سیره است نه اینکه بحث بکنیم دو لازم میاد یا نمیاد اگر سیره کاملا واضح و روشن باشه که اغلا لاعقل در اعتبارات قانونی به خبر سقه تعبد رجوع میکنن باید کاملا کافیه نیستی اغلا مردم در معرفت خیلی از امور به اهل خبره مراجعه میکنن در معرفت از امور و قول وکیل مراجعه اینها رو قول به غیره این یا مثلا زن حساب نمیکنه که خارج شده باشه یا همین زواهر رو کشون فرموندن برای من که مفید زن باشه این نکتهش اینه که عمله به زواهر یک عمل اکین و روشن یعنی یک است که مسلم حقالا انجام میدن اگر حجیت خبر سرم به همین مساقه روشه خوب که بحث نداره دو تا حکم عقلی یکیش در قرآن کریم آمده یکیش هم در واقع خارجی هست بیش مشکل هست ازا به ذهن ما میاد به در وقتها که دور لازم میاد باید تأکیب میشد در قیام سیره که آیا سیره یه هست هملا همین طوره واقعا بنای و بر این است که تابودن به صفت راوی که به ساقت باشه اکتفاق بکنه ما به طور کلی ها این بحث بشیم یا باشه به طور کلی هرز کردیم اون که منشه میشه در باب خبر که الان محل کلام ما خبر حسی هم هست نه خبر حسی اون چه که منشه میشه ما رو درسونه با اون به اون محبران به به اون واقع اون چیزی که منشه میشه خب اینا جهاز مختلفی هست. گاهی اوقات منشعش این است که یک صفتی در گوینده باشه گاهی اوقات منشعش این است که خود اون مطلب مخورن به خودش دارای شواهدی باشه گاهی اوقات نکته یعنی دیگری پیدا میشه این ارز کردن این منشأ شده سابقا نرا توضیح دادیم یعنی بیان کردیم به همین اختصار که این منشأ شده که خبر سقه خبر رو که مثل یک پلی هست بین شما و واقعیت و شعنش تعریقت سرفه تخصه کنیم، الان محل کلام ما اون جایی است که خبر شنش تحریت سرفه. بله این رسم ققلایی هست رسم بعضی از گروه های خاص هست، این متعام بین میشین ان کار کرد. یک صفتی در راوی و قائل باشه که مهمش، از نظر بهقوله مجموع استاد ثاقتشه و مهمش به لحاظ تعبد دینی اگالتشه که قاعده به خبر قبلل. دو اینکه مضمون و اون مطلق شواهد داشته باشه. این دنبال کسانی که میگن شواهد کتاب به صنددن ما یکی از راه های درست ما رسیدن به اون خبر این است که مضمون خبر مطابق با کتاب به صند باشه. سه اینکه اضافه برغل قائل، اصولا ببینیم در چه مصدری آمده این راهیست که اخواری ها رکنه چهار اصولاً خود خبر خیلی یعنی خود راوی یا کتاب یا این جهات خیلی کاشفیت قوی ندارن اونی که میتونه خیلی قشنگ ما رو برسنه به واقع تلقیه به قبوله این رای سهر مرتزا اگر مطلبی تلقیه به قبول شد این ما رو به واقع میرسونه. اگر تلقیه به قبول نشد نه اگر شده پس در حقیقت در کلمات علما ترقی و زوابتی ذکر شده برای اینکه جمله قرائنی باشه که ما رو به واقع برسونه به خبر که جنبه ارتباط داره ما رو برسونه به همون واقعیتی هست این نمیشه انکار کرد اما واقعت نظر از این نکته که حالا اون صفت چیه اون چیزی که قطعاً قابل انکار نیست این است که وصول و اطمینان و علم و و یا قص این در نظر او حجیت دارن این جای بحث نداره این نمه کلام آیا حجیت این ها است به تعبیر مرموم شیخ من جامل بعد و کسانی که قبلش شیخ دودن حتی عبارات اده از اهل سنت هم همینطوره. یا نه حجیت افت ذاتی نیست اوحلائیه ما از مقدمات مغزماتی تحمید مقدمات مغزم اصولاً محوله حجیت غیر از عمل فردی بر قطعه عمل فردی یک حالته نستید شما میدونی این ماه ازش قرار میکنی یا میدونی این شروت مهی میکنی عمل فردی یک مطلب حجیت مطلب دیگریه ما رو توضیح داریم یک مطلب اجتماعی است یک پدیده اجتماعیست حجیت اصولاً حالت فردی نداره است. حجیت تصویرش تو جامعه و تو قانون میشه این مراده از حجیت در اینجا اینه نه مراده از حجیت در اینجا اون که در منطقه آمده یا فلتفا اون بحث دیگری. این در بحث قانونی و در بحث اعتبارات قانونی حجیت اون است که رابطه بین مکلف رو با قانون بیان میکنه که رابطه برقرار شد چون تا رابطه برقرار نشه اون آثار قانونی بار نمیشه. اگر شما قانون را خبر نداشتیم، رأی با اون قانون نداشته اون جزای و آثار قانونی اینطور آثار، اون آثار بار نمیشه. بار شدن آثار قانونی مبتنی بر وجود یک رابطه بین مکلف و بین قانون، بین شهرل و بین قانون. تا این رابطه برقرار نشه، اون آثار بار... این که استدلال اسمش کدش هنگوسور. یا میذارم میزنم حجیت یا گاهی میزنم تنجز اصطلاحات ها تو مختلفیست روشنی تود انشاءالله پس اون بحثی که ما الان داریم در حقیقت بحث این قسمته اون اساس بحث ما در این قسمت در بخش حجیت اینجا در این امر اجتماعیست اگر امر اجتماعی شد تلیده اجتماعی شد این یک ضوابط خاص اجتماعی قبول میکنه ولذا در امور اجتماعی که سیر عقلائیه در اونجا حاکم است اصلا موازه عقلی چه عقل عملی چه عقل نظری جا نداره البته سیر عقلائیه ریشه هاش ریشه های عقل عملی است سیر عقلائیه اینطوره لکن فرق اساسی هست البته فروق دیگری هم داره که اگر فرصتی شده عرض میکنه فرق اساسی اینه که در احکام عقلی دقت لازم شده موضوع قیودی داره ها موضوع با تمام اون قیود و خصوصیاتش احراز نشه موقع همه نمیاد تا احراز نشه دقیقا این ظلمه نمیگن قدویه ممکنه کسی روی شلاخ اما ظلم نباشه باید دقیقا احراز بکنه این ظلمه این حیزاه اون وقت برای اون سال حکم. اما در سیر و اقلایی لازم نیست دقیقا احراز بکنه مثلا اگر قاضی گفت این آقا گناهکاره احتمالا بیدیم قاضی اشتباه کرده دقت بکنه لیکن چون باب دادگستری و قضا و قضای امرو اقلایی به حکم قاضی رو زندان میکنه. این رو ظلم نمی دانه با اینکه ممکن است واقعا بریب باشه و ظلم باشه یک سیره اقلایی ریشه هاش همون ریشه یه حکم عقله اما چون میخواد تو جامعه جایی بشه دقت بکنه و در جامعه اون چی که مهم است در قانون ايد در جهات فردی مخصوصاً در قوانین به طور کلی بیشتر اون روابط رو حساب میکنن و اون ارتباط جمعی رو حساب میکنن من سابقا کثارا عرض کردم ببینید این طور نیست که هیئت اجتماعی و هیئت جمعی یک امر رحمی باشه بعضی خیال میکنه امر اجتماعی مثلا اگر یک جامعه تمام افرادش خوشبخت باشن اون جامعه خوشبخته تک تک افراد ولو هیئت اجتماعی مطلوب نباشه ما این رو توضیح داریم جامعه بشری اینطور نیست خود هیئت من حیصول حیعت از عنوان داره احکام داره خود هیئت دارای مصالح و مفاسده ولذا توضیح داریم که مسئله حجیت ناظر به هیئت اجتماعی اصلا نه ناظر درس را به شأن که از کردم مثل این آجوری که الان این دیوار صاف رو ایجاد کرده یه دفعه شما خدا آجر و صفات آجر را نظر می گیرین سالم شکستن یه دفعه این دیوارهای قسمت سالم شکن رو هم بذشیم یک دیوار صاف رو تشکیل داده و ممکنه بعضیش هم در داخل شکسته باشه یا نسته باشه یا خرابی دیگه داشته باشه اما این هیئت اجتماعی فعلا موجوده خود هیئت اجتماعی غیر از اون حالت فردی تاثیر داره در حیوانات تاثیر من داره در جمادات تأثیر داره در انسان تاثیر داره ممکن است تمام افراد جامعه تکتر خوشبخت باشند اما هیئت اجتماعی رابطه اجتماعیشون ضعیف باشه اون هیئت اجتماعی درست نباشه همین بحث هاییست که در نزیدش تو اقتصاد آمده تو جامعه شناسی آمده انصاف قضیه اینه که ما در جامعه خودمون یک سری احکام رو اون حیط اجتماعی میبریم به نظر ما هم جیه میروی اجتماعی و توضیحاتی که دیگه سابقا نهاز کردیم چند بارم گفتیم تو اول مرحث وجودم به تفسیر اونجا متعرض شدیم که الان نمیخواب قیام بکنم علایه کیفه ماکان پس ما دقت بکن اونی رو که ما داریم الان در سیر اقلائیه اون میاد میگه مثلا قضاوت و دادگستری باید باشه چون اگه قضاوت نبود جامعه به هم بکنه این باید باشه هم ندیه این معنا که دقیقا ما مثلا دقیقاً بذاریم صد درصد، هزار درصد که این قاضی اشتباه نکرده. اگر اینجوری باشه مثلا قاضی حکمه، دیگه قبول ندارم یکی شو قبول نداره. باز داور ده قاضی دیگه گفت، باز دیگه قبول اون خب این اعتراض داره، نمی‌ونه خب اعتراض دیگه نمی‌میره. طرفین میگن آ ما اینو میگن نکردیم، این حکمی که قاضی گفت، یه دفعه این میگه اینفزا کرده، بونی میگه اینفزا کرده. یه خوبم یه اعتراض لذا ممکن از یک بار یا دو بار استیناف یا تنیز بدن استیناف بدن که آه شما حق مراجعه داری چیست دوم دیگه میگن حق جامعه رو مقدم میکنن برفر میگه آه من مظلوم واقع شدم. یه خب ریال بلاقی شده یا نشدیم جامعه این اختزاره میکنه پس در حیرت اجتماعی شما به دنبال مسئله به اصطلاح اون احراز ظلم به نهر دقیق نیستی در حیات اجتماعی چون یه مساله اجتماعی هم هست حجیت جزء همون مساله اجتماعیه یعنی اگر حجیت نباشه جامعه به هم بکاره مثل که اگه قضا نباشه مثل اینکه که زواهر هم کار خوبی پرمه نه درسته این مطلبی درست بیش داره. اگر این حجیت زواهر حجیت زواهر یک قرارداد شخصی نیست ممکن است من بگم آبا لفظ کنم به معنی کنم خیل حجیت زواهر یک نوع ارتباط اجتماعی در لحظه. الفاظ معینی رو به این معنا که من قصد تفهیم که میکنم این لفظ به کار میبرم و میدونم شما این معنا رو میفهمید و میدونم شما اگر بخواید همین معنا رو کار بگنید لفظه آق رو باید بزنید لیکن اگر من خودم یک معنی اراده بکنم بدونی که تفهم بشه این پدیده اجتماعی نیست ظاه پس خوب دقت رو که حجیدم همینطوره یعنی اینا فکر کردن که اگر ما چیزهایی رو حجت قرار ندیم این وضع جامعه به هم میخوره و لذا خوب دقت رو مثلا ما در آیاتون غاده که دروان مشورت داریم مشورت یک پدیده فردیه اشتباه نشه در آیاتم و امراه هم شورا بین هم شورا پدیده اجتماعیه این تا با همدیه خلال نشه ما پدیده فردی داریم. عملی فردی داریم، امر اجتماعی داریم. مشروع از اینکه امر فردی شما نمی‌روین کدوم دوا رو بخورین، کدوم غذا رو بخورین. احتمال می‌بینین 70 درصد 60 درصد این غذا مفید باشه، به متخصص مراجعه می‌کنین، 60 درصد شما میشه 90 درصد. مشورده امر فردیه. اما شورای نظام اجتماعی، زوابط خاصه خود جزره، نباید با باید مشوره اشتباه بشه. شاب رنفل هم مشورته فعلا ازمت فترک کرر این ازمت این نظام اجتماعی است که اگر رهبری رسول الله سرازه رو تصمیم گرفتن باید اون کار اجرا باشه در مقدماتش مشورت هر زمان در مقام تصمیم گیری راجع میشه به رسول الله دقیق فرمودیم پس و همه بر این خوب بکنید ما تو بحث قرط این رو من کردیم که اگر قطع حجت نباشه وضع جامعه اختلال پیدا میکنه چون به طور طبیعی ما صفتی روشن تر از قطع نداریم نه به این معنا که به حکم عقل که آن گرفته میشه جامعه محدود اصلا جامعه در زمان ما که خیلی خوبه یعنی دولت الکترونیک جامعه میشه یک جامعه محدودی رو تصور کرد که در تمام موارد از قطع هم بالاتر مثلا این مطلب شما ایش اگر به سایت مجلس بدیم بعدم باز دو به سایت و فلان میشه بعد هم... اینا میشه در میشه انجام ده. مشکل نداره اینا ذاتی نیست معنی نیست اینا بعد است، جامعه اگر برآیشه در جامعه صفت قرض ما در مجالس به اساءتوار قانونی قبول نکنیم بله در فیزیک ممکنه قبول نکنیم یا من قانون چندتا تا تجربه این از کجا گرفتی؟ مبازه قصد چیه؟ تجربه دیگران بوده تجربه خودت بوده؟ این تجربه ها رو باید بر ما بگی. این استکشافی گیزا کردی؟ اگر شما تو فیزیک گفتین قرض حجت نیست، مشکل نمیاد تو جامعه برنامه نمیخواد. اگر شما در شیمی گفتید قصد حجت نیست، این طرف دیگه من قصد دارن، خب قصد سوژ. خب چه ارزشی داره قصد سوژ؟ این که ذهن هارون ترسه، حجت به قصد ذاتی می‌بینی، معنایی نیست. که خیاف این در هر جایی و توضیحش هم ارز کرده این نمیده این مشکل از کجا پیدا شد مرحوم شیخ چون در اول رسال اعلم انن المکلنف از التفته اله حکم شرقی ما صلی اللہ قبل ارز کردیم قبل از مرحوم شیخ در کتاب مثلا مفاتی همین عبارت در مقدمه آورد اینشون مفاتی داره اعلم انن المشته در التفته حالا بعد شیخ این اینقدر ترسلا شده مرحوم داره یه به یک ترکه یا مکلف. اصلا این عبارت مشتهر بوده اساسا حالا چطور شده مروح شیخ تعریف فرونده مشتهر و مکلف که منشه و اراده کردن هم مشهره قطع مکلفی که اراده‌ای نداده بحث مکلف و زن مکلف طبعا اینجا ما در از قطع و زن در احکام و در و در احکام کلیات نه در موضوعات خارجی چون بحث موضوعات خارجی استعمال اصول نیست کالا مشتر مکلف تو چه تاقشه اونی که مال اصوله در احکام و زن و که در احکام لذا ما در اونجا متعرض شدیم دیگه نمیخواد تکرار بکنیم متعرض شدیم که قد اگر در جامعه متعارف ما حجت نباشه در اعتبارات قانونی در روابط اجتماعی اون جامعه مختلف میشه این انسان هست نمیشه. میشه جامعه مرادمون چیه این جامعه‌ای که ما داریم ممکن است جامعه الکترونیک از این خیلی قضیه بله بالا ممکنه اصلا ممکنه جامعه‌ای باشه تو این دو روز مجلس ببینیم زمان تصویب قانون ببینون خودمون بشینیم راست بعدا با دیگران معذره که قانون شری با دنگ زنسون اونم بازی مفتره بازی بازی از اون ممکنه اینا هیچ مشکل نداره یعنی اینا جامعه رو معنی اما در جامعه متارفی که ما داریم اگر بنابشه قرط خجم نباشه اختلال نظام لازم میاد واقعا جامعه به هم میخوره هی من آمان قرط پیدا نکرم باز بودو باز قرط پیدا نکرم این اصافا به هم میخوره جامعه به هم میخوره سوال اینه اگر ما در همینجا خبرستقه داشتیم ما به خبر خبرستقه عمل نکردیم گفتیم نه اینقدر شواهد پیدا کنیم تا قرط پیدا بکنیم تا ایل پیدا بکنیم آیا جامعه به هم میخوره؟ اینجا واقعا اختلال نظام می اینه که ما خیال بکنیم سیر اغلاییه و بنام اغلاییه که امر مبهن نیست که ما سر در نمیاریم از این امر تاریخیست بشیم نقلش این نیست سیر اغلاییه زیر بناهای خاص و خودشو داره از کردم ریشه های شیشه های احکام عقلی لیکن گاهی توش تسامهاتی میشه برای حفظ جامعه و معیار در سیران و غلایی دیوز بعد درست کردن معیار اینه که ما خود ما هم اون رو درک بکنیم دقیق بکنیم تفهیم و تفهم توش باشه همینطور که مرموم استاد زباهر گفتن کاش که توجه بیشتر بیشتری باید اینجوری باشه که من میدونم شو من میدونم و بنا دارم که اگر خبرستقه عمل نکردم وزن به هم میخور و شما هم همینه میدونید این تفحیم و بین ما هست این باید به این درجه برسه وقتی به این درجه رسید دیگه زن نیست از زن خارجی. و این که سیر و بیاد این که خیال بکنیم یک عمر مبهمه است که اصلا ازش تردن نیست اصولا مراده از اغلا در اینجا مرادی شخصیت های علمی فرس موسی شیخ و رئیس و فرس ملا سداد نیست مراد آمه مردم فقط افراد و خول و به و سفی خارجه همه عامه مردم همین این بقال و قصاب و فرس کفاش هم همه مردم عادی مراد از اغلاد اینجا فلاصفه و علماء و فوقه ها و اینها نیست ولی سیر اغلایی درست میشه. مراد از سیر اغلایی اینه یعنی کاری که آمه مردم به استثنا مثلا دو درصد بعضه اون جامعه پیشرفت عقلی و غیر عقلی یکی دو درصد دو سه درصد خارج عامه اینو بفهمند و مراد از این هم به اون درجه از وضوح رسیدن که اعتماد بزنید باید لا بالای درسته بالای 70 درصد بالای هفتاد درصد باشه و الا پنج, پنج, پنج درصد یک چیز چرا پنج درصد یک چیز این هم به نظر ما کافی نیست چون باید یک سری کاملا متخن و محکمی باشه البته این نکته است انصافاً مباحث و اصولی ما چون غالبا به صورت بسته و به ادعا مطرح شده این کار روش نشده الان در به اصطلاح علوم انسانی متعارض در دانشگاه ها غالبا رو مسائلی که ادعا میشه آمارگیری هست ما ها اون آمارگیری نداریم یعنی مثلا همین حجید خبر استقیل اونها میگه اکثر و قبول عبود اونها میگه ندارن هر دوشون آمار نداریم نه این طرف آمار داره نه این طرف. ما یک مشکل داریم مثلا میگویم که در اصول بعدی به حمت آون که بعد میان یه مقدار مباحث اصولی اگه میخوا رنگ علمی به خودش میگیریم اگه استاندارد علمی بگیره باید برگرده روی سرسره آمار و واقعیت های اجتماعی. پس این نکته رو باید در نظر بگیریم باجه به سیر دو و, و طهشاالله الان واضتر اعرض بکنن. پس یک ما در سیر نقش فعال داریم نه نقش انفاعی. نقش ما فعلی است برای فلسفه تاثیرگذار سیر منعقد نمیشه مگر اینکه اکثریت جامعه این مطلب پیشش واضح و بدیهی باشه این سیر اجتماعی زیر بناهای عقلی داره اما به اون دقت عقلی نیست یک نوع تسامحاتی درش داره باکم به هر حال اینها باید در حدی برسه که نظام اجتماعی رو حفظ بکنه. بقول خود هزار چون در عقل عملی یا اخلاق است یا سیاست, سیاست مدن یا تدبیر منزل این مراد سیاست مدنه و اتای هم تدبیر منزل کار میکنه مثل اگر پدر در منزل رئیس باشه یا مادر رئیس باشه مادر سالاری باشه پدر سالاری باشه به این معنا تدبیر منزل میگه ولی این مطلب ما راجع است به سیاست مدون اساساً در این بخش از اقل اخلا... عملی برمیگرده به سیاست مدن و انصافان هم همینطوره یعنی مسئله حجیت یکی از است که در جامعه به اصلاح جامعه قوامش بوده. یعنی جامعه قوام بگون بگونه اون وقت این سرشیه ما در بحث قرط ارز کردیم اگر قرط حجت نباشه اختلال نظام لازم میاد واقعا همینطوره این قبول بگونه اما در مورد خبر سقه اگر ما آمدیم گفتیم خبر سقه به ما و خبر سقه حدیت نزای اختلال نظام رازم میان یعنی واقعا جوریست که اگر ما گفتیم شما به خبر سقه عمل نکنید م... الا جایی که موسوح میاد چون دقت بکنید بحث ما الان در کجاست دقیقا اگر خبر سقه یعنی وجود این سقه در یا در راوی موجب وصوغ بشه خب وصوغ حجت اما اول قبول کنیم این وصوغ حجت اگر وساقت وساقتی که در راوی هست این موجب حصول وصوغ ما بشه ما وسوب به این مطلب از راه صفت راوی اگر از این راه ما وصوغ پیدا بکنیم خب این که جای بست نیست این انس کردیم آی ناشتن قهت حجت ما گفتیم قهت علم و عرفی و اطمینان اینا تمام حجیت و دارن نظام جامعه بر اینه. این از اول قبول کرده پس این محل کلام نیست محل کلام کجاست محل کلام است که اگر سقه بود خبرداد لیکن ما شواهدی برخلافش داشتیم وصور برای ما پیدا نشد دقت کنیم سقه آمد به این پسر گفت پدر گفته نان بخار لیکن مثلا پدر دو ساعت قبل من گفته نان بخار لکن پسره مثلا, مثلا پسر شنیده که اصلا دو ساعت قبل پدرش در اینجا نبوده شبهه داره که اصلا این آقا باشه ملاقات کرده یا نکرده اصلا این آقا پدرش دیگه یا نه تو یا فرد دیگری آمده حالا اون سقه نباشه فرد دیگری آمده میگه اصلا پدر سوم چیل نگفت. من دو ساعت پیش پیشش بودم. این آقام اونجا نبود. اصلا صبات نان هم نشد. سوال اینه خود دقیق بکنید. که اگر سقه خبری داد و شواهدی بر خلافش بود. نقطه دقت کنید. شواهدی بر خلافش بود. آیا باز هم این سیره و هست که بگه چون سقه گفته عمل بکن؟ این نقطه فنده اینجاست و اگر سیره باشه منشه این سیره چیه تمام بحث اینه ما الان مواردی رواهات صحیح داریم فسیم زراره نقل کرده لکن پس همین رواهات رو برای اینکه اینکه قبول بکنه و سرد شد به صلاح الزمو هم ما الزمو بیه انفوس یا به ما الزمو بیه انفوس خب این خبر رو مرحوم شیخ توصی در قرن پنجم آورده از واقفی هم شیخ کلینی در اوائل قرن چهارم این رو نیورده شیخ صدوق در اواخر قرن چهارم این رو این تعبیر در کتاب شیخ مفید هم نیامده اولین بار توسط حدیث که مالا قبله مالا زمان ما هم صادقه لیکن اولین بار توسط شیخ توسی بسر بس اینه که وقتی شواهد خلاف داریم. و دقیقاً همین سوال میکنه که زن است طلاق در مجلس واحد سنی میگه بله لا اجدا اوسم ما قال فلان به اینکه ازم مهم خیلی قبول بکنه شیخ صدوق روایت میکنه اتبو المطلقات صلاتن در مجلس واحد به انه این زن هایی که سه طلاق شدن در یک مجلس اینا شوهر دارن اینا ازدواج دارن صدوقی رو نال کرد این چی میخوام کل اینی نهارو کرده که اگر زنی رو شوهرش در مجلس واره سه طلاقه داد این رواده نهارو کرده شما بازه تا عدد بریم پیش این آقا بگین زن طلاق دادی بگه بله این خودش طلاقه اده رو از این وقت حساب بکنیم بعد اونو بگیریم یعنی سه طلاقه رو نمیشه گیره زاهرش این دیگه نمیشه چیه صحبت صحبت اینه که فرض کنید خبر شواهد تاریخی سقه خلافشه. منو استاد یا اغل اینجا میگن قبول بکن این بحثه اینه البته ما مشکل داریم مشکل فنی در صدور این روز ما مطالبون امروز قابل طرح در دانشگاه ها نیست چون نه ما آمار داریم نه ایشان هرج آمار ندیدید روی ایشون دعای سیره میگن ما ادعا می‌کنیم سیرانیم ت... طبیعی حالت طبیعی اینه دقیقاً ایشون هست اونی که شد محل کرام کجاست اونی که دقیقا محل کلامه اون جایی است که از خبر سه و ساب پیدا نشه بلکه شواهد بر خلاف شه تعمل آیا قرأ وقتی قطاری که ما قبول نکردیم گفتیم اون قطار قطار دیوانه از اون با علاج بکنیم، کنند گفتیم اون روانیه با درش حالا یه قطار رو ما قبول نکردیم که اونجا گفتیم باید آرخی لذا ما تطریح کردیم قطر وقتی حجیت داره نوید در سطح مبادیش آقلایی باشه ده سطحش رو فرد میگذاریم ممکن این فرد درش قصفیزا میشه فردی با این 90% قصفیزا داشته این 90% میکنی قبول بکنیم 90% مشکل داریم که یک کسی یک قوارد شواهد شواهید رو نرکن برای حسول قصف 20% درصدش آقلا قبول دارم معنی از این قصف حدیت داشته باشه چون ما حدیت قصف زادی نگیریم که امور فردی چی امور فردی از بحث ما خارجی حالا یک کسی از تو کور برای زندگی میکنه تا یک رنگ سایه میبینه فرانه کنه ما دو ماران به درد ما نیم کنه یکی اوهام داره توی کوزه دیگه هر چیز که نیمی کرده درسی به کار ما نداره اصلا نباید تو فقر بیاد دقیق کرده فردی, فردی نیستن یعنی امر قانونی بانون قانونی آثار قانونی داره مراد فردی شما با اون نگیریم فردی کسی که از قانون جدا زندگی کنه اون قانون نماز نماز نماز م بار عهد داشت رو چه خفلش باید درجه حجیت روشن شد درقه کنی چی شد مردم؟ از که میگن خبر سخه سیره و هست ما اجمالاً قبول داریم راست ما هم هست تو زندگیمون همینطوره لکه این نکتش اینه که غالبا از خبر سخه وسوخ پیدا میشه و وسوخ حجیت و, و داره نه چیزاتی اینه قبول داریم ما محل کلام اونجاییست که وصوح پیدا نشه حالا من به تحدیل دیگه فرض کنه 60% درستر, 70% درستر خبر سقه مفید وصوحه یعنی 90% بر ما ایجاد میکنه اون دقیق بکنی حالا مواردی آمد که خبر سقه 90% بر ما ایجاد نکنه درصد ایجاد اینم چون سقه بود اون سی درصد دیگره چجور درست بکنیم تا به 90 درصد درسته؟ چون ارز کردیم اصل اولی حجیت وصوخه وصوخ هم 90 درصدیه در بعضی از موارد اگر سقه نواشه که اصلا 20 درصد هم ما پیدا نمیشه چون سقه است بر ما 60 درصد پیدا شد یعنی چی یعنی شواهد بر خلافش منفرود و این که بگیم اوغنا اینجا به خبر سبب میکنن میگه خب خلاف وجدانه خب عده زیادی از صوفای خودمون بگیم اون وجود اوغلا نیستن عده زیادی از های ما میگن وقتی عمل نشود اون خبر قبول نمیکنه تا ایلوب نمازا اصلا عده هستن که کلا به رواسل نگاه نمیکنه میگن عمل اصحاب به هر کی عمل کنه عمل میگه نگه قبول نمیکنه اصلا صوفات به ساقط ما مثلا تمام اینا از دائره غلا خارجن امثال مرحوم سید مرتضی حرفش اینه که صفت راوی دی میتونه مشکل گشا باشه اونی که مشکل گشا از تلقیه به قبوله وثاقت راوی درست میکنه کار رو اونی که کار رو درست میکنه این است این فکر این اندیشه آره میخواد توی کلام باشه توی اصول باشه توی رجال باشه توی فقه باشه هرچی که باشه این اندیشه باید بین جماعت بین صائقه شیعه تلقی به قبول پیدا بکنه. خودت گفت این باید تلقی به قبول. وثاقت راوی، ادانت راوی، اشتهار کتاب. اینا هیچ کدوم چارچوبشان نیستن. اونی که چارچوبشان تلقی و قبوله. شرط نه. این میگه ما به قبول. سر بود تلقی به قبولشو قبول داریم. سر بود تلقی به قبول نشو قبول نداریم. قبول داریم. در واقع پس بس مثلا بگیم تمام اینا دره و الان خارجش خیلی بقیه اگه عکسش نگیم اونطرف خیلی بقیه ما بگیم بگیم تمام اینا انصافه این مطلب البته اما باز قبول بکنیم ممکنه از مثلاً و ممکن است مثلا 52 درصد اوغرا بگم بله میتونم از قبول بکونیم همون که بر اون استاد استفاده دارن تمام کلام و بحث در اینجاست که ما یک صفت راوی داریم در مقابل شواهد خلاف داریم و بحث سر اینه یک باید ثابت بشه نه پنجه و یک درصد اغلا باید ثابت شه هفتاد درصد و اکثریت مطلق باید برای بالا به حیثی که یک ارتکاز بشه باید به این درجه برسه تا به حد ارتکاز نرسه عنوان حجیت میدانه می این یک دو یه تحلیلی باید شما ارائه بدید که چطور در اینجا سیری و اغلا به نام به 90% هجه هسته وساقت راوی هم در ازیاد نمارد 90% میرسونه بستان دیگه. حالا در جایی وساقت راوی به 60% هستون درست اون 30% چطور جبران کنیم؟ سوال اون 30% رو فکر میکنیم می‌گی به بی‌صاحتش ساقت. به ساقتش که به همین 60 درصد باشه به سب نبود، مثلا اگه خبر ضعیف بود و اساس اعتراض کرد که 10 درصد پیدا نمی‌شه، چون سر بود 60 درصد رفتیم. با اعتراض‌ها. دقت بکنید، تعارض هم نیست، اشتباه با تعارض نشین، تعارض اینه که یک سری مطلب رو به یک تهمت دیگه نره. نه، ولی تعارض نیست. اصلا اعتراض کرده خبر هست، معارضه هم نداره، اساساً قبولش نکرده. در خطاای اصحاب نیامده مثلا نظر احرام قبل از میقات اصحاب ردش نکردوا رد ردم نداری فقط این عمومات که احرام قبل از میقات نمیشه یه هم داره نظر کرده شیخ هم جمع کرده گفت این آمیان خواست خاص جمع اما این خطا نیست تو کلام اصحاب نه این روایت نظر احرام تو روایت اصحاب آمده تا قرب پنجم شیخ طوسی گفت لا نسه تا قبل از قرب پنجم دید. نه روایتش هست نه فتواه هست. خب طبیعتا شما موسیقی تو مشکل میشه دیگه همین حکم که الان خیلی مشهوره در بنوغ خنزی خوک هست مرتبه خب این نداریم ما هیچ روازی نداریم فتواه هم نداریم اولین کسی که اینو آورده مرموم شیخ توسی منفرده هم هم تو کتاب تهذیب اونم از کتاب علی بن جعفر ما چندین نسخه از کتاب الیم جهل هیچ شتیر نیومد. آنطور که تو نسخه تو نسخه وسایل می‌کنی، تو نسخه قربالی استن دو در هیچ نسخه‌ای در هیچ نیست. یک رواحت که شیخ توصی در کتاب در تختی روشن آیا تو استرسار هیچ جدیان در هیچ کتاب فقیه هم خودش افترا نداره. که در ورود خندی هفت بار باز نه در نهایه فتوازه نه در مخصوص فتوازه نه در خلافت فتوازه خب دقت بکن تا برو فلسفه سرانجام صحیح بعد از شیخ طوسی هم چیزی قبل شیخ طوسی هم چیزی فسان شیخ طوسی هم فسان بعد از شیخ طوسی هم فسان اولین نفر محقق در قرن فتومه ایشون میگن یستحب بو ایشون روایت دیده که ایشون فقیره دیگه دیده این با. اولین اینکه که گفته یجب و هفت بار شستن انلام است. اون هم خب مبنی که میدونی چون میگه خبر صحیح حجت چون خبر... یعنی رواز صحیحه کاری هم به اعراض نداره تاریخ مزید نگاه نکرده فهمونید یجب و قسل الانا سب مرار دقیق فهمونید بخش نکنید شما بگیم مثلا خبر سقه اگر داشتیم خبر سقه مخالف که آمد تار... نه باید تاروز هم نیست سؤال اینه آیا شما واقعا چند درجه و چین حکی برای شما پیدا می این تاریخ حکی برای شما پیدا می خب قطعا شما خیلی بالا بالا بریمیگه 60 درست دیگه که <تصفيق> نه قبل از بوده نه بعد از بوده تازه اولین کسی هم که این فتوا زعه محقیقی که گفته یوسف هم برو اولین کسی که فتوا داده به وجود علامه دلیلش هم داره نظر ما واضحه هیچ علمه به قول مربوی یه گ یک خصالت خاصی هم نداره روایت در تنقیب شیخ سندش هم معتبر سعیه میشه خبر سعی حجت در فتوح المسلک سوال اینه که آیا چنین خبری با چنین حالی که این 60 درصد بیشتر ایجاد نمیکنه چه سیره و اوغلایی هست برای اینکه بگیم این حجت هست. این نقص رو این اینکه به 90 درصد نرسیده به 60 درصد این جبران را از کجا میکنید این جبران رو از کجا میکنیم؟ اگر میگین وطاقت را بید وطاقت شده 60 اصلا درست کرده اگر وطاقت در دسته بود پس بنابراین شما نیاز دارید به یک امری خارج از این کاشفیتش کاشفیت 60 اصلا اون امر خارج غالباً چیه؟ اختلال نظامه میگن اگر ما قبول نکنیم یا مثلا تأسیس فقل جدید فقل به هم میخوره اگر بنا این خبر رسره از بکنی دیگه باگتر به هم می‌خوره، باگتر به هم می‌خوره. یا اختلال نظام، بگید یه خارجی به زمین و قطعا این طور نیست. یعنی قطعاً این طور نیست که اگر ما به خبر رسره جایی که شواهد تایین شده می‌کنه عمل نکردیم، جامعه به هم بکنه قطعاً اختلال این غیر از بحث قضیه، قطعاً جو بگیم ما برگردیم تا حوادث پیدا بکنه. قطعاً اختلال نظام نمیاد بلکه پایین تر از اون، چون یک درجه پایین تر از دستور اسرا حرج حرج هم پیش نمیاد تاسیس فتق هم پیش نمیاد تغییر شریعت هم پیش نمیاد حالا ما در ولوق خنزیر گفتیم یک باشسته، شست بشه مثل بقیه حیوانات یا به قول بعضی از علمای سنی و عادتشال شیعه به یک معنی سه بار حکم خنزی رو با سگ یکی بگیریم سه بار با تو رازی را هفت بار فاطمه رو با هشت بار این نه تغییر فقه لازم میاد، نه خروج از دین لازم میاد. هیچ مشکل اجتماعی، مشکل فقی هم پیش نمیاد. و نزاع اشکال ما اینه که خبر ثقه در جایی که مفید و سوخ نباشه، قرینه عقلایی، سیاق عقلایی نداریم بر حجیتش. این تمام بحث اینجاست. و مراد ما دقیقاً اینجاست که این آیاتی آل که قائل به حجیت تعبودی هستن، یه گراهی پیدا کنم برای پر کردن این کمبود این کاستی 90 درصد بود روشن شو کامرا شده 60 درصد این 30 درصد چطور باکولش کرد این تمام نکته اینه و اگر مسئله اختلاف بله ان شاء الله دو کلمه دیگه مونده که اجازه روز شب بله ممکن است شما بگید ما در یک جامعه فقط دنبال اختلال نظام نیستیم این یک جامعه حد است که فکر بکنیم مثلا فلان نشه جامعه به هم بخوره ما باید دنبال یک جامعه حد اکثری هم باشیم و اون رشد و تعالی جامعه است. همطوری در حالی مبارکه هست و لا تحین و لا و انتومال احلون در یک جامعه که مخواد حالت انتومال اعلان باشه باید خیلی چیزها را قبول کن نه حد اق آیا واقعا همین طور قبول خبر سقه برای حفظ یک جامعه حده اکثری هم دازه رو بریم؟ اگر ما بگیم شما در این موارد دست نگه بذاریم تا غصوب پیدا بکنیم تا حجت بشه تا علم و عرفی بشه تا شواهد جمع بشه و به حد حجیت درسه دست نگه بذاریم. آیا واقعا این موضوع به جامعه حده اکثری انسا به از اینه که به نظر ما نه تو جامعه حده عقلی تأثیر داره نه تو جامعه حده اکثری هیچ نقطه اجتماعی خاصی نداره که علما و اغلا از اون نقطه اساسی که باید حسوق و اطمینان پیدا بکنن به خاطر وساقت راوی دست بردارن این ثابت نیست و لذا به نظر ما این سیره ثابت نیست یه توضیح دیگری ممکنه این یک تقریب دیگری بشه که عرض بعدش هم حالا چون یاد یک بوده یه ایر منه ظاهرا اضافه برای این که به نظر ما دقت کنیم این جامعه حداکثری که الان اصلاحش کردیم به نظر من یکی از ارکان جامعه حده اکثری خوب داریم بحث جامعه شناسی یکی از ارکان اساسی در جامعه حده اکثری از تعبد کم بکنه به واقع گرایی رو بیاره یعنی اون جامعه حده اکثری جامعه است که سعی بکنه هی درجات تابده کم بکنه اما شما بینید یه خبری رو که از خارجه خارج خود نمخه همراهش تصویرم میدارن خبر رو با تصویر به جای که خودشون خبر بگن یعنی انسان ببینه مسائل تب رو الان پیشرفتهای علمی این طوری شده که به جایی که مثلا این طبیق میگم نفذشی میگرد میگم مثلا مرض فلان داره حالا بردنش به دستگاه به عکس گرفتن به تصویر چون تصویر بگه نظر شخصی نیست حکایت واقعه بله ممکنه در خوندن عکس با همشت اختلاف بکنن یعنی در جامعه هم در حتی سعی میکنن خیلی از مسائل تب رو خیلی صابر هست. در باری حیوان در کتاب فرس که مثلا عرصو میخوندین یا کتاب جاهل میخوندین الان بالاتر از اون معلومات رو همه رو خیلی میخوند شما کاملا میبینی معلومات رو راجع به ماهی میگذن شوید یک قدمش هم صاده در کتاب عرصو هم نبود یعنی در جامعه حد در اکثری به عقص این که ایشو میگه خبر سقه حجته در جامعه عدد اصلا تمایلات بیشتر یعنی اتجار یعنی زوابط جامعه عدد از تعب دست برداشتن و به تعقل واقع گرایی ندید شدنه در اشگاهی مختلف الان سعی میکن تبر تبرو تا جایی که میتونم عمومیتر بکنن مسائل ننجور میه که شما ثابتما تو کتاب ها می خوون الان خیلی واضر هایی سری کار نشون بودن که حال از نزدیک طرف کاملا دیده و دست از تبد برده. به بهخص مثلا اون میگه من نظرم ای که این جا بلانجا برفتیمگهن شکسته الان عکس میگردن نکته اینه که توش تعبد نیست نکته ای این که میگه این رادیولوژی رودان ام آ اینا دیگه نیست. نیست که میگه آم من نظرم اینه. از تعبود دست بر میدارن نه اینکه رو بیارن به ت خبر قرار ما تبدن قبول میکنه اگر مرادشون از جامعه حددا این باشه تصاداً جامعه حدد اکری رو به این است که از به اصطلاح مسائل تعبود و چشم گوش بسته و مطلع نیستم چون این آقا گفته از این دست بردن چون واقع هست رو میدم سمت می در واقع در حال شدن. این راج به این سوال جواب و مونده که اینشانالله فردا عرض میکنیم و اشاره ای آبرعی میکنیم به دلیل عقلی که اون در اصول آوردن در حجج خبر واحد به اشاره به دلیلش و مارد عرضی که خورده بحث ادله حریم و مدار که واقعا خوب شد نتیجه نظر عقویه روشنی نیست ان شاء الله و صلوات الله و علیه